در درس بعدی که البته جزو همین ابدال و اعلال هست قسمت دومش دو قلب و الواوی یا ان رسیدیم ولی قبل از این به شما بزرگوارن کنم که در مزاره هم همین حالت پیش می اومد مثلا در ایقنه افعله مزارهش برواز یفعله هست خب موقعی که یای مزار مزاره زمه بگیرد مزاره ایقنه میشه یای قنو یای قنو در اصل البته چون یا ساکنه ما قبلش زمه این یای فل تبدیل به واو میشه یو قنو یو قنون در قرآن دیگه اوغده این قاعد کلی بود بیا رو درسه خودمون قلب الواوی یا ان قلب شدن واو یا. الامثله امثله یسودو المرء بی ادبه یسودو المرءو بی ادبه در یسودو واف داریم لکل امره ما نواه در نواه واف داریم یهودو الاملو در یهودو هم واف داریم خب در همین امثله گروه اول اگر دقیقی بکنیم فکن فا سیدن فال اعمالو بنیات فال اعمالو هیلوس اما ببینیم که سید واب درش دیده نمیشه یسودو مادش سید هست ولی در سید واوی دیده نمیشه در مزارش دیده میشه در نیت نواق فعل ماضیش واو دیده میشه و در نیت دیده نمیشه در یهونو که همون مادش حیین هست یهونو واو دیده میشه در حیین دیده نمیشود میدونیم که اصل سید سیود اصل نیت نی و اصل یههولوهیین اصل هیین که ماده یهولو هست حیون بوده. اما می که واب در سید تبدیل بیا شده در نیاد و اعمال به نی تبدیل بیا شده در نییت و در هیین هم که حیون هست تبدیل به یا شده پس واب تبدیل بیا بیشد چه زمان در قایده نیگوید انجز حرون ما عده، فانجز المعاد وعدو و میاد در میاد ببینید که واب تبدیل بیا شده زن الامورو بالعقل در توزنو میاد در اسموده مذعاد بلی یا, یا ساکن ما مکسور وابه ساکر مکسور تبدیل بیا شده مبعاد شده نیعاد توزن الامور بالاقل لانه خیر میزان در اسبود مبعزان که شده میزان اورق الشجر فانه ال ایراق افراق که هست ایراق این قواعد رو خودش توضیح بده فعلا امثل رو میخونی یعد المرء على اخیه و وعندمهما العادي يسمو الوطن بأبنائه إذا كثر فيه الصامي يعدو اسم فائلش العادي وابتبديل بياشده يسمو الصامي وابتبديل بياشده ويعلو برجاله رجاله إلى قمة الشرف العالي يعلو كاسم فائلش هست العالي ببینیم که واو تبدیل به یا شده. بیاد روی قاعده 80 که همه چیز رو میگوید. تقلب الواو و یا یا ان تقلب الواو یا اد. قلب میشود واب به یا الف اذا اجتمعت و والیاء في كلمته دقت داشته باشید واب تبدیل بیا بیشد در سه حالت از اجتمع عطیه زمانی که جم شود و ویا ویا واب ویا با هم جم فی در یک کلمه و الاولا من هما ساکنتن و اولی ساکن باشد و ویا در یک کلمه با هم جم شود و اولی چی شود ساکن باشد مانند سه و سی ود یا و با وام کن جن هستن یک جا و یا ساکن کن هستن سی ود پس می شود سید ماننده هی ون هی ون یا وام وام جن هستن که می شود هید ماننده نبه یه نو یه واویا با هم جمند واو با قبلش ساکن هست میشود نیت در امثلا گروه اول آورده است پس سیدو نیت و چرا واو تبدیل یا شده است خاطرین که تا حرف در یک کلمه با هم جمند و اولی ساکن است. با اذا وقعت ساكنه بعد کسر جای دومی دو که واو تبدیل به یا می شود زمانی که واو ساکن باشد و بعد از کسر قرار می یعنی واو ما قبل مکسور به عبارت دیگر امثله گروه دوم دو میعاد میزان عراق میعاد در اصل بوده مو عاد برعکس مثال دیگه یا واب ساکل بوده ما قبلش کسی شده تبدیل بیا میعات موزان از وزنه هست میزان مفعالم میشه موزان واب, واب ساکل ما قبل مکسور تبدیل بیا شده شده میزان همین میراس هم در اصل هست میوراس شده میراس ال ایراق ال ایسال ایو افعال افراق واو ساکن ما قبل مكسور تمدیل بیا شده شده عراق ایسال الى آخر وحا سبه من جای که واضح تمدیل بیا می شود اذا وقعت متطرقتا بعد کسر متطرفتا معذرت متطرفتا در طرف واقع شدن جای سوم زمانی که وام در یک طرف واقع شود ولی بعد از کسر بعد از کسره یعنی ما قبلش مکسور باشد همین سمثالی که آورده در امثلی گروه سفر العادی السامی العالی اصلش عدوه سموه علوه هست ولی در این ستا در اسم فائلش می‌بینیم که الان تو کتب دیگر به شکل دیگر مطرح می‌کنند. مثلا میگن زمانی که حرفه به بعد واقع شود واف در هر صورت پس واف که در طرف واقع شود و ما قبلش مکسور باشد تبدیل بیا می شود اسم فائل یهدو برواز فائل می شود عادو مثل زربه میشه زارب عدوه هم میشه شود عادف اصلش عادو هست ولی چون واف در یک طرف واقع شده و ما قبلش کاسره پس عاده می شود سما و سابه در اصله ولی چون واف در یک طرف هست و ما قبلش مکسور می سامی علوه هم عالی فاعل ولی چون در یک طرف هست و ما قبلش مکسور پس می شود عالی و و هر واب دیگه که این دو شر توش باشن بهمیر حالت هست. هر غزوه یا غزو در اسم غازو اما میشه غازی. دعوه، دعوه دعو در اسم میشه داعو اما اسم فاعلش هست ادداری. هست جاهایی که واب تبدیل به یا میشد این سجا هستند خیلی عالی توضیح داده است زمانی که واو و یا با هم در یک کلمه جمع شدند و اولی ساکن بود تبدیل به واو تبدیل به یا دو زمانی که واو ساکن بود ما قبلش مکسور مانند موزان که میشود میزان و سه زمانی که در یک طرف بود و بعد از کسر واقع شده بود، زمانی که واب در یک طرف بود و ما قبلش مکسور بود که بسیار عالی توضیح داده بود.